خصف با سرعت کلیسا رو دور زدم آنجا سر ماشین را برگرداندم و به طرف میدان رونتگن براه افتادم رأس ساعت شش آنجا بودم وقتی از خیابان چاندلر داخل میدان رونتگن پیچیدم دیدم که اولا جلوی مغازه گوشت فروشی استاده است تمام مدت در حالی که ماشین های دیگر محاصرم کرده بودند و خیلی آهسته می توانستم میدان رونتگن را دور بزنم او را می دیدم تا اینکه سرانجام توانستم به پیچم و ماشین را پارک کنم. او بارانی قرمز رنگش را بر تن داشت و کلاه سیاه رنگی بر سر گذاشته بود. به یاد آوردم که یک مرتبه گفته بودم چقدر خوشم می او را با بارانی قرمزش ببینم. ماشین را جای پارک کردم. وقتی به طرف او دویدم اولین چیزی که گفت این بود. اینجا اجازه نداری پارک کنی. ممکن است 20 جریمه شوی. از صورتش خواندم که با ولف صحبت کرده بود. سایه سیاهی بر روی صورت گلگونش افتاده بود. بالای سرش در ویترین مغازه گوشت فروشی میان دو تکه چربی سفید، بین گلدان و طبقهای مرمرین، کنسروهای گوشت به شکل مخروط قرار داشتند که روی برچسب آنها با خط قرمز پررنگ چاپ شده بود. کنسرف گوشت گاف گفتم بگذار ماشین هم اینجا باشد وقت زیادی نداریم گفت حرف بیهوده نزن کلید را بده به من آن طرف یک جایی پارک خالی شده است کلید را به او دادم او را می دیدم که سوار ماشین شد و با تردستی از منطقه ممنوعه به طرف دیگر خیابان که یک اتومبیل از آنجا رفته بود می راند. سپس به طرف صندوق پستی که نفش خیابان بود رفتم و نامی را که برای پدرش نوشته بودم داخل آن انداختم آهی کشیدم و به زندگی زناشوی بیپایانی که چیزی نمانده بود با هم داشته باشیم فکر کردم به سرزنش هایی که در مدت سی چهل سال بر من میبارید و باید تحمل میکردم درست مثل سنگ هایی که داخل یک چاپرتاب میشوند بینندی اندیشیدم که او چقدر متعجب میشد اگر این کاس صدای این سنگ ها کاهش پیدا میکردند. صدای کوتاه و خفه تا اینکه دیگر صدایی به گوش نرسد و سنگ ها از چاه سر بر می میکشیدند و اندیشه چاهی که سنگ از آن سر بزند مرا در حالی که با اوله از خیابان پیچیده و به طرف کافه یوس میرفتیم تعقیب می کرد. گفتم: آیا با ولف صحبت کرده ای؟ و او جواب داد: « بله؟ و من وقتی جلوی کافه یوس ایستادیم دستش را گرفتم و گفتم لازم است با هم حرف بزنیم گفت او بله ما باید با هم صحبت کنیم مرا به داخل کافه یوس هول داد و هنگامی که من پرده‌ی نمدی را پس زدم میدانستم که چرا برای او اینقدر مهم بود که با من در این کافه بنشیند من با او و ولف بارها در این کافه بودیم حتی آن موقع که هنوز با ولف به کلاس های شبانه میرفتیم و بعدها پس از آنکه در امتحانات قبول شدیم و دیگر به مدرسه مهندسی نمی رفتیم کافه یوز و عدگاه ما بود. فنجان های قهوه بیشماری را اینجا با هم نوشیده بودیم، بستنی های بیشماری را با هم خورده بودیم. وقتی که اولا کنار من ایستاده بود و او را لبخن زنان میدیدم که به دنبال میز خالی میگشت فهمیدم که او خیال میکرد مرا در دام خود گرفتار کرده است اینجا دیوارها، میزها، سندلیها، بوها و صورتهای دختران خدمتکار همه طرفدار او بودند. جایی که همه چیز بر وفق مرادش بود. او روی این خاک حاضر به مبارزه با من بود. اما او نمیدانست که این سالها بایستی سی یا چهار سال باشند. از خاطرم پاک شدند. اگرچه من همین دیروز با او اینجا نشسته بودم. من این سالها را همانطور که انسان یک یادگاری را که هنگام گرفتن به نظرش خیلی با ارزش و مهم می رسیده است دور میاندازد، دور انداخته بودم. مثل یک قطع سنگ که انسانی از قله مرتفع مانتبلان بلان به عنوان یادگاری برمیدارد و از آن نگاهداری می‌کند، ولی ناگهان به این نتیجه می‌رسد که حرکتش بیسمر بوده است. این قطعه سنگ خاکستری را که به بزرگی یک قوطی کبریت است و شبیه میلیاردها تن سنگ دیگر بر روی این کره خاکی است، ناگهان از قطار میان ریل‌های آهن پرتاب می کند. جایی که این سنگ نیز با سنگ ریزه های دیگر مخلوط می شود. شب غرب تا دیر وقت آنجا بودیم. او بعد از مراسم دعای دست جمعی کلیسا دنبالم آمده بود و من در دستشویی پشت ساختمان دستهایم را که هنوز از کار کثیف بودند شسته بودم. من یک پیرشکی خورده و شراب نوشیده بودم. صورت حسابی که دخترک به من داده بود می بایستی جایی در ته جیب شلفارم زیر اسکناس ها باشد، قبضی که باید روی آن شش مارک و پنج و هش فینیک نوشته شده باشد. و من دختری که قبض را به من داده بود را در قسمت عقب مغازه میدیدم که چگونه روزنامه های عصر را به پای آویزان می کرد. اولا پرسید، بنشینیم؟ گفتم، باشد بنشینیم. خانم یوس پشت پیشخان ایستاده بود و با یک انبار ای شکلات های مغزدار را مرتب می کرد. امیدوار بودم که از جلوی پیشخان بگذریم و او به ما خوشامد بگوید. برایش خیلی مهم بود که این کار را بکند. چون او دلش برای جوان ها می و دوستشان دارد. اما او از پشت پیشخان بیرون آمد. هر دو دستش را درست کرد ولی از آنجایی که سویچ ماشین و کالا هم در دستهایم بودند، موچه دستهایم را فشرد و گفت: خیلی خوشحالم از اینکه دوباره می‌بینمتان. و من حس کردم که از خجالت سرخ شدم و با دستپاچگی به چشمان زیبا و بیزی شکلش نگاه کردم. از چشمانش میتوانستم بخوانم که چقدر زنها از من خوششان میآید. رابطه دائمی با شکلات‌های مغزدار که او مراقبشان است، او را خیلی شبیه آنها کرده است. او مثل یک شکلات مغزدار به نظر رسد. شیرین تمیز اشتها آور انگشتان کشیدش بر اثر تماس روزانه با انبار نقره‌ای همیشه کمی از هم فاصله دارند کوتا قد آننده رو پرنده کوچک جست و خیز می‌کند. و و دو دوتار موی سفیدش که از شقیقه هایش به پشت شانه شدهاند مرا به یاد خطهای بعضی از شکلات‌های بادامی می‌اندازند. در سرش در این جمجمه باریک و تخم مرگی شکل شرح کامل و دقیق محلهای مصرف شکلات مغزدار شهر ما نقش بسته است او دقیقا می‌داند کدام خانم کدام شکلات را ترجیح می‌دهد. با کدام شکلات می‌توان باعث خوشحالی چه کسی شد او مشاور و راهنمای تمام مردهای رسم و و معتمد تمام مغازه‌های بزرگ است که در روزهای تعطیل توجه خیلی خاص به های مشتریان مهم خود دارد. او از مصرف گونه‌های مختلف شکلات‌های مغزدار خاص پی می‌برد که کدام زنا در حال انجام است یا اینکه پذیرفته است. او همچنین با مهارت و زبردستی شکلات‌هایی را می می‌کند که به بازار رونق خاصی می‌بخشد. او به اولا دست داد و لبخند زد. کلید ماشین را داخل جیبم گذاشتم و او دست اولا را رها کرد و دوباره با من دست داد. به چشمانش تقیق ترخیره شدم و سعی کردم برای خودم تجسم کنم اگر هفت سال پیش می آمدم و از او تقاضای نان میکردم، چگونه با من صحبت میکرد؟ میدیدم که چشمانش تنگ تر می شوند. جدی و خشک مانند چشمان قاز. من این انگشتان کشیده و زیبا که از هم فاصله داشتن را میدیدم که مثل پنج حیوانات جمع میشوند. این دست لطیف و خوش ترکیب را می دیدم که از خسیسی گرد و زرد رنگ شده بود و من با عجله دستم را از دستش درآوردم طوری ترسید و در حالی که سرش را تکان می داد به پشت پیش برگشت اکنون چهرش مثل شکلات مغزداری به نظر می رسید که داخل کثافت افتاده است و مغز وسط آن آهسته داخل جوی آب می ریزد مغزی که دیگر شیری نیست و به ترشی می زند. اولا مرا کشید و ما از جلوی میزهای اشغال شده از روی قالی باریک آجری رنگ به سمت ته سالان که او میبایستی دو تا صندلی خالی دیده باشد رفتیم فقط این دو صندلی سر یک میز سه نفره خالی بودند مردی سر میز نشسته بود که یک سیگار برگ لب داشت و روزنامه میخواند. وقتی نفسش را بیرون میداد دودی زیبا به رنگ خاکستری کمرنگ از میان خاکستر خارج می‌شد و ذرات ریز خاکستر روی کت و شلوار تیرش می‌نشست. گفتم: اینجا بنشینیم؟ اولا گفت: هیچ جای دیگری خالی نیست. گفتم: بهتر است که به یک کافه دیگر برویم. او نگاهی پر از نفرت و کینه به مرد انداخت و به اطرافش نگریست و وقتی در گوشه کافه یک مرد از جایش برخاست و به زن خود در پوشیدن پالتویی به رنگ آبی روشن کمک کرد چشمان اولا را دیدم که فاتحانه برق میزنند برای او این را وقتی دوباره از پشت سر او راه میرفتم احساس کردم به شکل غیر قابل توصیف مهم بود که گفتگوی ما به هر ترتیب آنجا صورت گیرد كیفدستیاش را روی صندلی که روی آن هنوز جعبه کفش زنی که پالتایی به رنگ آبی روشن بر تنداش انداخت و زن پالتو آبی هم در حالی که سرش را تکان میداد جبهه کفش را برداشت و دنبال شوهرش که بین میزها ایستاده بود، و صورت حساب میگساری اش را به دختر خدمتکار می پرداخت، راه افتاد. اولا ظرف‌های کثیف را جمع کرد و کنار گذاشت و روی صندلی که در گوش قرار داشت نشست. من هم روی صندلی کنار او نشستم. سیگارم را از جیبم بیرون آوردم و جلویش گرفتم. او یک نخ برداشت. برایش روشن کردم. و سیگار خودم را هم آتش دادم، و به بشقاب های کسیفی که رویشان هنوز باقی مانده ی کرم کرهی چسبیده بود، و هسته های گیلاس آن قرار داشت، و به تهمانده ی شیری رنگ یکی از فنجان های قهوه نگاهی انداختم. اولا گفت، باید این مطلب را وقتی در کارخانه از میانان دیوار شیشه‌ای که کارخانه را از دفتر حسابرسی جدا می کرد مراقبت بودم می دانستم. اینکه تو به خاطر یک تکه نان صبحانهشان چگونه با آنها رفتار می کردی؟ یکی از آنها موجود کوتاه قد و زشت و بدترکیبی بود یکی از آن آرمیچر پیچ ها که مبتلا به بیماری نرمی استخوان بود نحیف و مردنی و صورت پر از جوش و بیماری داشت او نصف لقمه نان و مربایش را به تو داد و من میدیدم که تو چگونه آن در دهانت می گذاشتی. پس تو نمیدانی که من او را حتی بوسیدم و به سینما رفتیم و در تاریکی شب دستایش را گرفتم و اینکه او در آن روزهایی که من امتحان کارآموزی‌ام را می‌دادم جان سپرد و اینکه من تمام حقوق یک هفته خودم را خرج گلهایی کردم که سر خاکش بردم امیدوارم که مرا به خاطر آن نصف نان و مربا بخشیده باشد. اولا ساکت مرا نگاه می‌کرد. ظروف کسیف را بیشتر به بی کنار زد و دوباره سر جایش گذاشت. چون چیزی نمانده بود که یک باشقاب روی میز بیفتد. گفتم شماها حتی لازم ندانستید که یک دست گل برای مراسم به خاک سپاری بفرستید حتی یک کارت تسلیت هم برای والدینش نفرستادید. تصور میکنم که تو فقط با جوهر قرمز یک خط تمیز و مستقیم روی اسمش در لیست حقوق کشیدی دختر خدمت کار آمد بشخاب ها و فنجان ها رو روی یک سینی گذاشت و گفت قهوه اینطور نیست؟ گفتم نه لطفا برای من قهوه نیاورید اولا گفت اما برای من لطفا و دختر خدمتکار به من گفت و برای شما چه بیاورم؟ با خستگی گفتم یه چیزی اولا گفت برای آقای فندریش لطفا یک چای نعنا بیاورید گفتم بله برایم یک چای نعنا بیاورید دخترک گفت خدای من چای نعنا نداریم ولی چای معمولی داریم. گفتم باشه یک چای معمولی بیاورید و دخترک رفت. به اولا نگاه کردم و حیرت کردم. مثل اغلب اوقات که از لبان کلفت و زیبایش که ماننده خطهای باریک و نازکی که با خطکش میکشید نازک و کشیده میشدند تعجب تجب می ساعتم را از دستم باز کردم و کنار خودم روی میز گذاشتم ساعت شش و ده دقیقه بود و من حتی یک دقیقه بعد از یک رو به هفتم پیش اون نمیماندم. حاضر بودم آن بیست مارک را بدهم ولی دو دقیقه بیشتر با تو صحبت کنم من این دو دقیقه را با میل و رقبت به عنوان حدیه خداحافظی به تو میبخشیدم. مثل دو شاخه گل خیلی با ارزش اما تو خودت آن را از خیشتن گرفتی برای من این دو دقیقه به اندازه 20 مارک ارزش داشتند. او گفت خیلی مرد با وقعا رو با شخصیتی شده ای. گلهای شاخیه ده مارک هدیه می کنی. گفتم بله به نظر من ارزش زحمتش را داشت. چون ما تا به حال هرگز به هم چیزی هدیه نداده ایم. هرگز اینطور نیست؟ او گفت نه ما هرگز به هم هدیه نداده ایم. من در ذهنم اینطور جا افتاده است که انسان باید شایسته هدیه باشد و به نظر من تو هرگز لیاقت آن را نداشتی همانطور که به نظرم خود من هم لیاقت آن را نداشتم گفتم نه و تنها چیزی که من میخواستم به تو بدهم گرچه تو شایستگی را نداشتی خودت قبول نکردی به آرامی گفتم هر وقت با هم بیرون می رفتیم. هرگز فراموش نمی کردیم رسیدی برای بازپسگیری مالیات کسب شده بگیریم به نوبت. یک بار برای شماها و بار دیگر برای من و اگر قبضی برای بوسه ها وجود می داشت تو آنها را در یک پوشه وایگانه می کردی. گفت برای بوسه ها رسید وجود دارد و بالاخره یک روزی رسیده آن به دستت خواهد رسید. دخترک برای اولا قهوه و برای من چای آورد. و به نظرم مراسم گذاشتن چای و قهوه روی میز خیلی طولانی آمد. گذاشتن ها، فنجانها، های شیر و ها ظرف تخم مرغی شکلی که چای خشک آن ریخته شده بود و یک بشقاب کوچک که روی آن یک چنگک کوچک نقره‌ای قرار داشت که یک برش خیلی نازک لیمو ترش را میان دندانهایش گرفته بود. او لا سکوت کرد و من میترسیدم که او فریاد بزند. یک بار شنیده بودم که او چگونه وقتی پدرش از دادن اختیار تام در مسائل تجاری سر باز زده بود داد میزد. زمان به جلو نمیرفت ساعت شش و سیزده دقیقه بود. اولا گفت لعنتی حتی ساعتت را کنار بگذار. مساعتم را با لیست قضا پوشاندم به نظرم می رسید که می بایسی تمام اینها را به کررات دیده، شنیده و بویده باشم. مثل صفیه که همسایه های بالای خانم هر شب سر ساعت معینی میگذاشتند. مثل فیلمی که در جهنم به نمایش گذاشته می شود. همیشه فقط یک فیلم و بوی قهوه، عرق، عدر، لیکور و سیگار که در فضا پخش است. گفته های من و اولا به دفعات گفته شده بودند. اما صحت نداشتند و با واقعیات منطبق نبودند. به نظرم می آمد ما، مثل تعریف هایی بود که من برای پدرم درباره بازار سیاه و گرسنگی می‌کردم در همان لحظه که بیان می‌شواد از واقعیات اندازه دور بود و ناگهان به یاد صحنه‌ای افتادم که هلن فرنکل به من نان و مربا داده بود آنقدر واضح که من گمان کردم تمام مزه مربای قرمز و مأموری را زیر زبانم حس می‌کنم و هوای هدویک و سایه سبز تیره پالی را کردم که یورگن در آن نابدید شد. اولا گفت: درست نمیفهمم. چون برایم قابل درک نیست که چیزهایی وجود دارند که تو به خاطر پول انجام ندهی یا اینکه پولدار است. گفتم: نه، او پول ندارد، اما میداند که من دستی کرده‌ام. یک نفر از شماها باید برای کسی تعریف کرده باشد که آن شخص هم آن را به برادر او گفته است. حتی ولف هم به تازگی مسئله را یادآوری کرد. گفت، بله، او کار درستی کرد تو آنقدر متین و با شخصیت شده ای که شاید فراموش کرده باشی اجاق برقی را دست ای تا برای خودت سیگار بخری گفتم، و نانی را که تو و پدرت به من ندادید فقط ورف گاهی وقتا به من نان میداد او نمی که معنای گرسنگی نگه چیست اما همیشه وقتی با هم کار می کردیم سهم نان خودش را به من میداد و به آرامی گفتم کمان می میکنم اگر تو هم آن وقتها فقط یک بار به من نان میدادی برایم غیر ممکن بود که به خودم اجازه بدهم اینجا بنشینم و با تو این طوری صحبت کنم. ما همیشه بیشتر از حد تعیین شده حقوق پرداخت می کردیم و هر کسی که پیش ما کار می کرد ساعت کارش دقیقا حساب میشد و حتی ظهرهای یک ژتون برای خوردن سوپ مجانی دریافت می کرد. گفتم: بله، شما همیشه بیشتر از حد تعیین شده حقوق پرداخت می کردید. و هر کسی که پیش شما کار میکرد، ساعت کارش دقیقاً حساب میشد و حتی ظهرها یک جتون برای خوردن سوپ مجنی دریافت میکرد. گفت، تو خیلی پست هستی، ای نمک نشناس. لیست غذا را از روی ساعتم برداشتم، اما ساعت هنوز شش و نیم نشده بود و دوباره ساعتم را با لیست غذا پوشاندم. گفتم، یک بار دیگر لیست های حقوق را نگاه کن، لیست هایی را که تو می نمشتی. بلند و آنگونه که آدم شعر مذهبی را میخواند با احساس اسم آنها را با صدای بلند بخوان و بعد از هر اسم بگو ما را ببخش. بعدا اسم ها را جمع بزن. تعداد اسمها را ضرب در هزار نان بکن. نتیجه را دوباره در هزار ضرب کن. آن وقت از تعداد نفرین ها و فحش که توی حساب بانکی پدرت جمع شدهاند اطلاع پیدا خواهی کرد. واحد محاسبات، نان است نان سالهایی که در ذهنم همچون مه قلی سایه افکنده است سوپ بیم و گسی که به ما می دادند، تنها شکم پرکن بود و شبها وقتی با تراموا در راه خانه تکان می‌خوردیم، خوردیم ترش و داغ آن را توی گلوی مان نهز می کردیم باده گلوی که از روی ناتوانی و ناچاری می‌زدیم. و تنها تفریحی که داشتیم نفرت بود نفرت و آهسته ادامه دادم نفرتی که از مدتها پیش از درون وجودم مثل باد گلویی که شدیداً معدم را می کرد بیرون می آمد. برای اولین بار توی چشمایش نگاه کردم و آهسته گفتم جدا میخواهی به من بقبولانی که با آن سوب و اضافه حقوق ناچیز حق خودت را عدا کرده بودی؟ می این را به من بقبولانی؟ فقط به لوله های بزرگ کاغذ روغنی فکر کن او قهوهش را هم زد دوباره به من نگاهی انداخت پاکت سیگارش را جلویم گرفت یک نق برداشتم کبرید برایش زدم سیگار خودم را هم روشن کردم برای من حتی حطالصوی است که شماها درباره دزدی عجیب من با این مردم صحبت کرده اید اما جدا خواهی باور کنم که همه ما. همه ما که در لیست حقوق شما بوده ایم، نمی بایستی هر چند وقت یک بار چند تا نان اضافی دریافت می کردیم؟ هنوز هم سکوت خود را نشکسته بود. نگاهش را از من برگرفت و من گفتم، آن وقتها، وقتی در خانه خودمان زندگی میکردم کردم، کتابهای پدرم را بلند می کردم تا نان بخرم. کتابهایی که او خیلی با آنها علاقه داشت، کتابهایی که در زمان تحصیلش به خاطرشان گرسنگی را تحمل کرده بود. کتاب هایی که بابت شامپول پول بیست عدد نان را پرداخته بود من به قیمت نصف نان میفروختم. این نرخ بهره است که ما به دست می‌آوریم. منفی دویست تا منفی بی اولا آهسته گفت ما هم. ما هم بهره پرداخت می کردیم. بهره را آهسته در گفت بهره که تو نمیدانی. گفتم بله. شما آن را میپردازید و حتی درست نمیدانید که در صد آن چقدر است. اما من من کتاب ها را بدون انتخاب بر می ایار انتخاب من تنها قطر آنها بود. پدرم آنقدر کتاب زیاد داشت که فکر می کردم کسی متوجه نخواهد شد. تازه بعدم فهمیدم که او تک تک کتابهایش را همچون چوبانی که گله گوسوننددانش را میشناسد می شناخت. یکی از این کتابها خیلی کوچک و کوهن و زشت بود من آن را به قیمت یک قوطی کبریت فروختم اما بعدا اطلاع پیدا کردم که ارزش آن به اندازه یک واگن پر از نان بوده است بعدها پدرم از من تقاضا کرد که برنامه فروش کتاب ها را به او واگذار کنم او با گفتن این جمله از شرم صورتش سرخ شد و به این ترتیب خودش کتاب ها را میفروخت و پول را برایم پست می کرد و من با آن برای خودم نان میخریدم وقتی کلمه نان را بر زبان آوردم او در خودش فرو رفت حالا دلم برایش سوخت. گفت اگر دلت می مرا کتک بزن چای را توی صورتم بباش حرف بزن به حرف زدن ادامه بده تو توی که اصلا نمی خواستی حرف بزنی اما لطفا دیگر واجه نان را بر زبان نیاور او گفت در حقم لطفی کن و مرا از شنیدن آن مذور کن. لطفاً. من آرام گفتم. مرا ببخش. دیگر این کلمه را تکران نخواهم کرد. دوباره او را نگریستم و ترسیدم. اولا. اولایی که آنجا نشسته بود متأثر از کلام من. نگاهم. تحت تاثیر اخلابه کوچک ساعت که زیر لیست قضا فضا را می شکافت به خود آمده. او دیگران کسی نبود که پیکان تیز حرفهایم برایش تعیین شده بودند. گمان می کردم او خیلی حرف خواهد زد و با بیتفاوتی حق را به خود خواهد داد. اما حالا این من بودم که به شکلی بیتفاوت خود را محق می‌دانستم. او به من نگاهی انداخت و من می‌دانستم که بعداً وقتی که به خانه پدرش می رود، و از جلوی کارگاه تنگ و تاریک عبور می کند وقتی از میان بوتهزارها، از روی سنگ ریزها و از زیر درختان یاس کبود بود میگذرد. دست به چه کاری خواهد زد؟ او کاری را میکرد که من اصلا از او انتظارش را نداشتم. اینکه او گریه خواهد کرد و من یک اولای گریان را نمیشناختم. تصور میکردم او از این کارزار فاتح بیرون بیاید. اما حالا این من بودم که بر او پیروز شده بودم و طعم تلخ پیروزی را روی زبانم میچشیدم. او اصلا به قهوش دست نزده بود. تنها با قاشق بازی میکرد. و من از تون صدایش ترسیدم وقتی که گفت من با کمال میل یک چک سفید امضا شده میدهم که با آن بتوانی نفرین ها و ناسزه ها را از حساب من برداری. برایم خیلی جالب است که تو در طی تمام این سالها درباره این چیزها فکر میکردی و نفرین ها را میشه بدون اینکه به من چیزی بگویی. گفتم من در تمام این سالها به آن فکر نکردم. قضیر طور دیگری است: شاید الان و اینجا به فکرم رسیدند. تو رنگ قرمز را به چشم ای میریسی تا بفهمی تا کجا خواهد رفت. اما ممکن است سالهای زیادی طول بکشد تا اینکه تو جایی را که اصلا فکرش را هم نمیکردی آب قرمز رنگ را پیدا کنی. امروز از برکه ها خون جاری شده. من تازه امروز میفهمم که رنگ سرخ من. تو است او گفت شاید حق با تو باشد من هم تازه امروز میفهمم که پول برایم چندان اهمیتی ندارد برای من اصلا مهم نیست که چک سفید امضا شده دیگری را به تو بدهم به علاوه یک صورت حساب بانکی و تو می توانستی هر چقدر که پول میخواستی از حساب برداشت کنی و من به هیچ وجه ناراحت نمیشدم. من همیشه خیال می کردم که از این کار ناراحت خواهم شد شاید تو حق داشته باشی اما حالا دیگر خیلی دیر است گفتم بله الان دیگر خیلی دیر است آدم میبیند اصبی که میخواسته رویش هزار مارک شرط ببندد چگونه از خط پایان مسابقه میگذرد آدم حتی برگه شرط بندی پر شده در دستش است برگه سفیدی که اگر رویش شرط بسته میشد میتوانست ثروت هنگفتی را با خود به هر مقام بیاورد اما شرط بسته نشده است و برگ بیرزش است و نگهداری آن به عنوان یاد بود و خاطره بیهوده است. او گفت حالا آدم هزار مارک دارد اما تو شاید هزار مارک را با برگه شرط بندی داخل جوی آب بریسی گفتم بله گمان میکنم من این کار را بکنم شیر را توی چای سرد ریختم لیمو ترش را در آن فشار دادم و نگاه کردم که چگونه شیر گلوله شده به رنگ زرد مایل به خاکستری تهنشین می شد سیگار را جلوی اولا گرفتم اما او به علامت نفی سرش را تکان داد. من هم میلی به سیگار کشیدن نداشتم و پاکت سیگار را داخل جیبم گذاشتم لیست غذا را کمی از روی ساعتم بلند کردم و دیدم که ساعت ده دقیقه به هفت است و دوباره به سرعت لیست غذا را روی ساعتم کشیدم اما او متوجه شده بود و گفت تو برو، من میخواهم بمانم گفتم نمیتوانم تو را به منزل برسانم گفت نه من هنوز اینجا میمانم تو برو اما من بلند نشدم و او گفت دستت را به من بده من دستم را به او دادم. یک دست دستم را محکم در دستش نگاه داشت بدون آنکه به آن نگاه کند ناگهان پیش از آنکه من هنوز فکرش را بکنم دستم رو را رها کرد و دستم به گوشه میز کوبیده شد گفت مرا ببخش دوست نداشتم اینطور بشود نه نمیخواستم درد شدیدی در دستم احساس کردم اما حرفش را باور کردم که او عمدی کار را نکرده است اغلب به دستهایت نگاه می کردم که چگونه ابزارهای کار را نگاه میدارند. چگونه دستگاه را لمس میکنند که چطور دستگاه هایی را که به هیچ وجه نمی شناختی از هم باز می کردی؟ طرز کارشان را بررسی میکردی کردی و دوباره سوارشان میکردی. میشد فهمید که تو اصلا گویی برای این کار خلق شده ای؟ و عاشق کارت هستی و اینکه بهتران بود که میگذاشتن با هنرت نان در بیاوری تا اینکه آن را به تو ببخشند؟ گفتم: من شغلم را دوست ندارم از ها مثل بکساری که از ماش زنی متنفر است متنفرم او گفت حالا برو برو من بدون اینکه چیزی بگویم بیان که دورو برم را نگاه کنم تا جلوی پیشخان رفتم سپس برگشتم و به دخترکی که در میان میزها ایستاده بود پول قهوه و چای را پرداخت کردم